می در کف من نه که دلم در تاب است، بین عمر گریز پای چون سیما بست، برخیز که بیداری دولت خواب است، در که آتش جوانی آب است. ما کافر عشقی و مسلمان دگر است، ما مور ضعیفی مسلمان دگر است، از ما رخ زرد و جامعه کهنه طلب، آزا چه قصب دگر است، می خوردن و شاد بودن آین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است، گفتم به عروس دهر کابینه تو چیست؟ گفتا دل خورمه تو کابینه من است. نه لاویق مسجدم نه در خورد کنشت، ایزد داند گله مرا از چه سرشت، چون کافره در بیشم و چون قهبه زشت، نه دین و نه دنیا و نه امید بهشت.